اینالله لا بقوم طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم با قسمت ششم شش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 به مفهوم بازگشتن از دین اسلام یا خروج فرد مسلمان از دین اسلام و در لغت به معنای رجوع و بازگشتن در چند آیه از قرآن کریم به این موضوع از سوی الله سبحان پرداخته شده از آن میان در سوریه مائده آیه 45 و سوریه محمد آیه 25 ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته در سوری بقره آیه 217 هم با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده و مجازات مرتد در قیامت تباه شدن اعمال و عذاب جاودان عنوان شده است مرتد کیست؟ مرتد کسیه که از اسلام خارج شده و کفر رو اختیار کنه ارتداد در مذهب تشیع به دو قسم فطری و ملی تقسیم شده. مرتد فطری کسی که پدر یا مادرش در حنگام انعقاد نطفهش مسلمان بودن و خودش بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده. مرتد ملی کسی که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او کافر بودن و او بعد از بلوغ اظهار کف کرده و سپس اسلام آورده و مجددن کافر شده. حکم جزائی مرتد در مذهب شیعه اینه که مرتد فطری اگر مرد باشه کشته میشه و توبه او نزد قاضی قابل قبول نیست. اما اگر مرد مرتد ملی باشه نخست دعوت به توبه میشه اگر توبه کرد آزاد میشه و الله به قتل میرسه زن مرتد چه فطری باشه چه ملی کشته نمیشه بلکه دعوت به توبه میشه اگر توبه کرد آزاد میشه و الله در زندان باقی میمونه حکم محدور و دم واجب القتل دانستن مرتد در میان اهل مذاهب تسنن و تشیع مورد اجماع و در فقه شیعه مستند به اخبار امامان خودساخته این مذهبه که طبق اون هر کس مرتد بشه خونش مبا و زنش به او حرام میشه الله تعالی ماهیت و روانشناسی افرادی که بعد از ایمان به دین اسلام کافر میشن رو در آیات متعدد الهی ترسیم نموده سوره مائده آیه 61 و, و چون نزد شما آیند گویند ایمان آوردیم در حالی که با کفر وارد شدند و با کفر بیرون رفته اند و الله به آنچه کتمان می آگاهتر است سوره توبه آیه 66 اوز نی به براسی بعد از ایمانتان کافر شدید اگر از تقصیر گروهی از شما بگذاریم گروهی دیگر را عذاب خواهیم کرد چرا که آنان مجرم بودند سوری نسا آیه 137 همانا کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند و بعد از آن ایمان آوردند و باز کافر شدند و آنگاه بر کفر خیش افسودند قطعاً الله آنها را نخواهد بخشید و راهی با آنها نخواهد نمود. سوره نهل آیه 106 هر کس بعد از ایمانش به الله کافر شود جزایش جهنم است جز کسی که تحت فشار واقع شده ولی دلش به ایمان محکم است آری کسی که سینه خود را به کفر بکشاید خشمی از الله بر آنهاست و ایشان را عذابی بزرگ خواهد بود حال ببینیم دیدگاه الله متعال در مورد افراد مرتد چیه حکم دیانت اسلام در مورد کسایی که تغییر عقیده دادن در آیات متعدد الهی لحاظ گردیده در قرآن مبین پنج آیه باری ارتداد داریم سوره بقره آیه 27 آنان پیوسته با شما میجنگند تا اگر بتبانند شما را از دینتان برگردانند و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حالت کفر بمیرند آنان کردارشند در دنیا و آخرت تباه می شود و ایشان اهل آتشند و در آن مندگار خواهند بود سوری آل امران آیات نود الى نودی کسانی که بعد از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر خود افزودند هرگز توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانند در حقیقت کسانی که کافر شده و در حالت کفر اگر اگرچه پهنای زمین را پر از طلاع کنند و آن را برای خود فدی دهند هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نگردد آنان را عذابی دردناک خواهد بود و یاوران نه خواهند داشت سوری مائد آی 54 ای کسان که ایمان آوردید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی الله گروهی دیگر را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان نیز او را دوست دارند اینان با مؤمنان فروتن و بر کافران سرفرازند. در راه الله جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند این فضل الله هست آن را به هر کی بخواهد میدهد و الله گشایشگر داناست سوره محمد آیات 25 الی 28 هم. بی گمان کسانی که بعد از آنکه راه هدایت بر آن روشن شد به حقیقت مرتد شدند شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور درازشان انداخت چرا که آنان به کسانی که آنچه را الله نازه کرده خوش نمی داشتند؟ گفتند ما در کار مخالفت تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کرد و الله از هم داستان آنان آگاه است پس چگونه تاب میآورند وقتی که ملائک عذاب جانشان را بستانند و بر چهره و پشت آنان تازیانه می نوازند. زیرا آنان از آنچه الله را به خشم آورده پیروی کردند و خورسندیش را خوش نداشتند پس اعمالشان را تباه کردانید از آیات مورد اشاره این مهم استنبات میشه برای مرتد که دین الله رو انکار کرده هیچ هیچگونه مجازات دنیوی از سوی حق تعالی مقرر نشده و تنها نکتی که متذکر گردید اینه که اعمال مرتد در دنیا و آخرت تباه و زایع میشه و در آخرت ازیانکارانه از و آتش جهنم نصیبش خواهد شد حکم واجب القتل دونستن مرتد از سوی فرقه های مستند به چند روایت مجعوله که در مصادر و منابع فقیشون دیده میشه و جالبینه که این فتاوی کوچکترین سنخیتی با نس سریح شریعت قرآن مبین به عنوان موسقترین ادله و مرجعیت اسلام نداره متاسفانه به دلیل متروک و محجور نمودن قرآن در بین مذهبیون شاهدیم که اکثریت مردم به جای پیروی کردن از احکام و دستورات و قوانین الهی تابع ولایت شیطان و هبست پرستاند و اوامر اونا رو در قالب احادیث و روایات ساختگی بر قوانین الله رب العالمین ترجیح میدن علت بدبختی و زلالت مذهبیون اینه که کلام الله رو رها گذاشتن و جای اون به یک مشت موهومات و خرافاتی متمسک شدن که منشه اونا ساخته و پرداخته خودکاران مسخبیه و چنان که میبینیم بازار این افتراعات خرافات و مذهبی مسخبی که از ذهن پلید و شیطانی یک مشت دکاندار دین و شیاد حرفی تراوش پیدا کرده رایجه و نهایت اینکه بسیاری از مردم رو از راه الله دور و گمراه کردند سوره فرقان آیسی و پیامبر الله گفت پروردگارا را قوم من این قرآن را رها کردند سوره نسا آیات شست الاشست یک آیات توجه نکردی کسانی که میپندارند به آنچه به سوی تو نازه شده و به آنچه پیش از تو نازل گردید ایمان آوردند با این همه میخواهند داوری خود را به سوی ببرند با آنکه قطعا فرمان یافتند که بدان کوف برزند ولی شیطان میخواهد آنان را به گمراهی دوری دراندازد و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه الله نازل کرده و به سوی پیامبر او بیایید منافقان را می بینی که از تو سخت روی برمی‌تابند سوره بقره آیه و چون به آنان گفته شود از آنچه الله نازل کرده است پیروی کنید میگویند نه بلکه از چیزی که پدران خود را بران یافتی پیروی میکنیم آیا هرچند پدرانشان چیزی را درک نمیکرده و به راه ثباب نمی اند باز هم در خور پیروی هستند؟ احکمون حاکمین فرمان فرما حنده و مولای متقیان در دین مبین اسلام فقط اللهه و او در حکم خودش احدی حتی انبیا الهی رو هم شریک خودش قرار نمیده و نهایت این که احکام و فتاوی ساده شده در پوشش سنت و اهل بیت و اطرت ساختگی باطل و مردود محصول میشه آری هر حکمی که شریک شریعت الله قرار بگیره مرغاست سوری شورا آیی 21 آیا ایشان را شریکانیست که شعرم میکنند برای ایشان از دین آنچه را بر آن الله اجازه نداده سوره چف آیه 26 و هیچ و هیچکس را در حکم خیش شریک نمیگرداند پس نتیجه این که فتوای محدور و دم واجب القتل دانستن مرتد از سوی اهل اساساً اساسا باطله و حکم فردی که تأقیر عقیده یا انکار دین اسلام رو بعد از ایمانش بکنه با استناد و استشهاد به آیات و متعدد الهینه که تنها اعمال مرتب در دنیا و آخرت تباه میشه و در فردای قیامت از یانکاران و آتش جهنم نصیبش میشه در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع حکم ارتداد در شریعت قرآن مبین گوش کردید کمال تشکر رو دارم پروردگارا بیداری، خرکت و اراده را در پرتو فرامین روشنگرخیش بر همه مظلومان ستمدیدگان عنایت انایت فرما یارب چنین باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم